Thank mm -hmm. you. داستان دوم اموفیگیلی در کانتیکت نزدیکی های ساعت سه بود که مری جین بلاخره خانه الویز را پیدا کرد برای الویز که از در اتومبیل رو به پیش بازش آمده بود تعریف کرد که کارها خیلی خوب پیش رفته و او راه را تا وقتی بزرگ راه مریک را دور زده دقیقا به یاد داشته است الویز گفت بزرگراه مریت جانم و به یاد مریجین آورد که دوباره دیگر هم به خانهش آمده است اما مریجین فقط چیزی نامفهوم. چیزی درباره جعبه دستمال کلینکس خود گفت و با عجله به طرف اتومبیل روبازشوی خود برگشت. الویز یقه کت پشمشتارش را بالا زد پشت به باد کرد و منتظر ماند. مریجین یک دقیقه بعد برگشت و در حالی که با دستمال کلینکس بینیش را پاک می کرد هنوز بیقرار و حتی ابوس بود. الویز با خوش قلبی گفت غذایی که برای نهار پخته پاک سوخته است گوشت سینهی گوساله و همه چیز اما مری جین گفت که توی راه چیزی خورده است هر دو به طرف خانه راه افتادند و الویز از مری جین پرسید که چطور شده امروز بیکار است مری جین گفت که تمام روز بیکار نیست فقط چون آقای واینبرگ باد فتخ دارد و توی خانهش در خانه نشین است هر روز بعد از ظهر باید نامههای او را برایش ببرد و یکی دو نامه رو برگرداند از الویز پرسید راستید باده فتخ چیه؟ الویز که سیگارش را زیر پا روی برفهای گلالود خاموش میکرد گفت که دقیقا نمیداند اما مری جین نباید زیاد نگران مبتلا شدن به آن باشد مری جین گفت و هر دو زن پا به خانه گذاشتند 20 دقیقه بعد توی اتاق نشیمن مشغول نوشیدن اولین لیوان ویسکی و سودا بودند و حرفهایشان ویژگی یا احتمالاً محدودیت همکلاسی های سابق دانشکده را داشت. آنها حتی پیوند محکم تری داشتند. هیچیک فرق و تحصیل نشده بود. الویز در سال 1942 وسط سال دوم، یک هفته پس از اینکه او را با یک سرباز توی آسانسور دربسته در طبقه سوم راهروی محل اقامتش قافلگیر کرده بودند دانشکده را رها کرده بود. مریجین در همان سال همان کلاس و تقریبا همان ماه دانشکده را رها کرده بود تا با یک دانشجوی دانشکده خلبانی ساکن جکسون فلوریدا عروسی کند. پسرکی لاغر عاشق پرواز، اهل دیل میسیسیپی که دو ماه از سماهی را که از عروسیش با مریجین میگذشت به جرم چاقو زدن به یک دژبان در زندان گذرانده بود. الویز گفت خیر دقیقا قرمز بود. روی کاناپ دراز کشیده بود. مچپاهای لاغر و بسیار زیبایش را رو روی هم انداخته بود. مریجین تکرار کرد من که شنیدم بور بود. روی مبل پشت بلند آبی رنگ نشسته بود. نمیدونم کی به زمین و زمان قسم میخورد که بور بود الویز خمیازه کشید و گفت چه حرفا؟ من تقریبا توی اتاقی بودم که اونها را رنگ میکرد ببینم مگه اون تو دیگه سیگار نیست مریجن گفت اشکاری نداره من یه پاکت پر دارم همینجا و توی کیف دستیش را گشت الویز بیان که از روی کاناپه تکان بخورد گفت کلفت عبله یه ساعت پیش دو تا جبه تازه انداختم چلوش الانه که سر و کلش پیدا بشه و بپرسه چه کارشون کنم چی میگفتم مریجن که یکی از سیگارهای خودش را رو روشن میکرد فوری گفت دیرینجه رو میگفتی آها بله دقیقا یادم میاد شب پیش از عروسیش با فرانگ هنگ بود که موهاش رنگ کرد اصلا قیافش یادت هست تا حدودی مردک بیکار نبود خیلی زشت نبود زشت بود خدایا یه مشت ارزان توی صورتش میریختی یه دونه پایی نمی اومد این سرش را عقب برد و قشقش خندید و گفت عالی گفتی و دوباره راست نشست الویز پاهایش را که جوراب به ساقه بلند آنها را پوشانده بود کم کم به کف اتاق نزدیک کرد و بلند شد ایستاد و گفت گیلاس تو به من بده راستش چیکار بکنم از دست این ابله برای اینکه بیارمش اینجا پیش خودمون تنها کاری که نکردم این بود که لورو وادار نکردم باش عشق بازی کنه. الان پشیمونم. اینو از کجا مری مریجنگ گفت. اینو؟ و به گردنبند بند جواهر نشانش دست گذاشت. توی دانشکده به گردنم بود. یادت رفته؟ مال مادرم بود. الویز که گیلاس های خالی توی دستش بود گفت. خدایا من حتی یه یادگاری از کسی ندارم. اگه مادر لو بمیره، احتمالا یه یخشکنه قدیمی که اسمش روش کنده یا همچین چیزی برای من میذاره راستی این روزا چطور میتونی باهاش سر کنی؟ الویس که به طرف آشپزخانه میرفت گفت خوشمزدگی نکن مریجه این پشت سرش بلند گفت این دیگه گیلاس آخریه آره جون خودت کی تلفن کرد؟ کی نیم ساعت دیر اومد؟ اینقدر باید بمونی تا حوصلم از دست سر بره مردشوی کار اداری نکبتی تو هم ببرن مریجین سرش را به عقب برد و دوباره قشقش قشق خندید اما الویز دیگر توی آشپزخانه رفته بود مریجین از اینکه تنها مانده بود و نمیدانست چه کند بلند شد و قدم زنان به کنار پنجره رفت پرده را کنار زد و مچ دستش را به یکی از میله های ارزی وسط ها تکیه داد اما جرم روی آن را که احساس کرد دستش را پس کشید. و با دست دیگر دستش را مالید و تمیز کرد و شق و رخت ایستاد بیرون برف های گلالود داشت یخ می بست. پرده را رها کرد و با بیخیالی از کنار دو قفسه انباشته از کتاب گذشت و بیان که به هیچ یک از نام کتاب ها نگاه کند به طرف مبل آبی رنگ رفت. نشست، کیفش را باز کرد و دندانهایش را توی آینه نگاه کرد. لبهایش را بست و زبانش را رو محکم روی دندانهای بالا مالید. سپس دوباره آنها را نگاه کرد رویش را برگرداند و گفت بیرون داره یخبندون میشه خدایا چه سری درست کردی صدا توشون نریختی الویز که توی هر دستش یک نوشیدنی تازه بود ناگهان ایستاد هر دو انگشت اشاره را هفتیر مانند نشانه گرفت و گفت هیچ کس تکون نخوره همه جا رو محاصره کردم مریجین خندید و آینه اش را توی کیف گذاشت الویز با نوشیدنی ها جلو آمد. نوشیدنی مریجین را ناصاف توی زیرگلاسی گذاشت و نوشیدنی خود را توی دستش نگه داشت. دوباره روی کاناپه دراز کشید. گفت خیال میکنه اون بیرون چیکار میکنه؟ با اون پشت گندهی سیاهش نشسته کتاب خلقه رو میخونه. جایخی ها رو که بیرون میآوردم از دستم افتادن. سرشو بالا که چپ چپ نگام کرد. مریجین که نوشیدنی خود را این آخرین نوشیدنی منه جدی میگم آهای گوش کن میخوای بدونی هفته پیش کیو دیدم؟ تو طبقه اول فروشگاه لورد تیلور؟ الویز گفت بالشی رو زیر سرش منظم کرد و گفت آکیم تامیروف مریجین جین گفت کی؟ ایشون کی باشن؟ آکیم تامیروف توی فیلم ها بازی میکنه همیشه میگه شما با مزده شوخی کرد من براش میمیرم تو این خونه یه بالش پیدا نمیشه که حال منو به هم نزنه کیو دیدی؟ جکسونو اون کدوم یکی؟ نمیدونم اون یکی که تو کلاس روانشناسی بود که همیشه هر دوتاشون تو کلاس روانشناسی ما بودن؟ خب اون یکی که خیلی خیلی مارسیا لویز منم یه بار بهش برخوردم حتما سر تو برد خدایا آره میدونی چی به من گفت گفت دکتر وایتینگ مرده گفت نامی از بارباراهیل به دستش رسیده که نوشته بوده وایتینگ سرطان گرفته مرده و از این حرفا خانم وایتینگ موقع مرگ فقط بیست کیلو هشت بز داشت. بزداشت نیست خیر الویست تو خیلی داری سنگ دل میشی دیگه چی میگفت آه تازه از اروپا برگشته بود شوهرش توی آلمان یا نمیدونم کجا کار میکرده و اون همراهش بوده. میگفت یه خونه 47 اتاقه داشته با 10 تا پیشخدمت که فقط یه زوج دیگه تو اون خونه بودن. برای خودش یه اسب داشته و یه مهتر که معلم خصوصی سوارکاری شخص هیتلر یا یه چیزی دیگه بوده. دیگه بگم تعریف کرد که چطور نزدیک بود یه سرباز سیاه‌پوست بهش تجاوز کنه. درست توی طبقه اول فروشگاه لرد تیلور برام تعریف کرد. چکسونو که می‌شناسی می گفت که اون راننده شوهرش بوده و یه روز صبح داشته اونا با اتومبیل می برده بازار یا نمیدونم کجا می اینقدر ترسیده بوده که حتی الویز گفت یه لسه سب کن سرش را بالا کرد و بلند گفت تو ای رامونا؟ صدای پسر کوچکی پاسخ داد بله الویز بلند گفت در و پشت سرت ببند عزیزم این راموناست؟ دلم براش یه ذره شده میدونی از کیتا حالا ندیدمش؟ الویز با چشمان بسته فریاد زد برو توی آشپسخونه و بزار گریز گالشاتو در بیاره رامونا گفت خیلی خوب بیا تو جیمی مری جین گفت دلم براش یه ذره شده وای خدایا ببین چه کاری کردم خیلی خیلی متاسفم ال. الویز گفت عیبی نداره عیبی نداره من اصلا از این قالی بدم میاد یکی دیگه برات میریزم مریجین گفت نه ببین نصف بیشترش مونده و گیلاسش را بالا گرفت الویز گفت حتما یه سیگار به من بده مریجین دستش را دراز کرد پاکت سیگار را جلوی الویز گرفت و گفت دلم براش یه سر شده الان شکل کیه الویز کبریتی روشن کرد شکل آکیم تا میرفت نه جدی میگم لو شکل لوست وقتی مادر لومیت اینجا هر تاشون شبیه سغولوها میشن الویز بیان که بلند شود بنشیند دستش را به طرف یک دسته زیر سیگاری که در آن سر میز سیگار بود دراز کرد به زحمت زیر سیگاری بالایی را برداشت و روی شکم خود گذاشت گفت من یه سگ اسپانیایی پاکوتاه گوش دراز لازم دارم یه کسی که به خودم رفته باشه مریجه این پرسید الان چشماش چطوره؟ میخوام بگم بدتر که نشد خدایا تا اونجا که میدونم نه اصلا بدون عینک میبینه شبا رو میگم اگه یه وقت بلند بشه بره مستراهی جایی به کسی که حرفی نمیزنه خیلی تو داره مری جین روی صندلی چرخید و گفت خب سلام رامونا چه پیراهن قشنگی نوشیدنی خود را پایین گذاشته حتما منو به جا نمیاری رامونا چرا به جا میاره این خانم کیه رامونا؟ رامونا گفت مری جین و خودش را خواراند مری جین گفت آفرین رامونا یه بوسه کوچولو به من میدی الویز به رامونا گفت این کارو نکن رامونا دیگر خودش را نخواراند مریجین دوباره پرسید یه بوسه کوچولو به من میدی رامونا؟ من خوشم نمیاد مردم ببوسم. الویز اخم کرد و پرسید. جیمی کجاست؟ همینجا. مریجین از الویز پرسید. جیمی کیه؟ چی بگم؟ دوست پسرش. هر جا میره اونم میره. هر کاری میکنه اونم میکنه. مثل همزاد. مریجین زوق زده گفت. راستی؟ به جلو خم شد. تو دوست پسر داری رامونا؟ چشم های رامونا پشت شیشه های زخیم عینک حتی ذره از ذوق زدگی جین راموناکس نمی کرد. الویز گفت مری جین از تو چیزی پرسید رامونا. رامونا انگشتش را توی سوراخ بینی کوچک و پهن خود فرو کرد. الویز گفت این کار نکن. مری جین از تو پرسید دوست به سر داری؟ رامونا که با بینی خود ور می رفت گفت بله. الویز گفت رامونا دستتو بنداز. فوری بنداز رامونا دستش رو انداخت مریجن گفت خب من که میگم عالیه اسمش چیه؟ اسمش رو به من میگی رامونا نکنه نمیخوای این راز رو به من بگی رامونا گفت جیمی جیمی؟ از اسم جیمی خیلی خوشم میاد جیمی چی چی رامونا؟ رامونا گفت جیمی جیمی رینا الویز گفت صاف ایست به به اسم خیلی قشنگیه جیمی کجاست به من میگی رامونا رامونا گفت همینجا. اینجا نگاهی به اطراف انداخت سپس دوباره چشم رامونا دوخت و با لبخندی پرسنده گفت اینجا کجاست جونم رامونا گفت اینجا دستش توی دست منه مریجین به الویز که نوشیدنیش را تمام میکرد گفت سردر نمیارم الویز گفت منو نگاه نکن مریجین رامونا را نگاه کرد و گفت آها فهمیدم جیمی فقط یه پسر خیالیه چه عالی مریجین مشتاقانه به جلو خم شد و گفت از دیدنت خوش جیمی الویز گفت با تو حرف نمیزنه رامونا برای مریجین از جیمی حرف بزن چی بگم؟ پاشو عزیزم به مریجین بگو جیمی چه شکلیه چشماش سبز و موهاش مشکیه. دیگه چی؟ و بابا نداره. دیگه چی؟ ککمک نداره. دیگه چی؟ یه شمشیر داره. دیگه چی؟ رامونا گفت نمیدونم و باز بنا کرد به خاراندن خودش. مریجین گفت خیلی منشره و از روی صندلی بیشتر به جلوخم شد. رامونا بگو ببینم وقتی اومدین تو جیمی هم گالشاشو در آورد رامونا گفت جیمی چکمه داره مری جین به الویز گفت بی اینطور خیال کن منو بگو که ناچارم از صبح تا شب با این موضوع بسازم جیمی باش قضا میخوره باش حمام میکنه کنارش میخوابه رامونا یه سر تخت میخوابه تا وقتی قرد خورد جیمی رو ناراحت نکنه مری جین که از این خبر مجذوب با زده شده بود لب پایینش را گاز گرفت سپس گفت آخه این اسم از کجا آورده؟ جیمی جیمرینو رو؟ خدا میدونه شاید اسم یکی از پسر بچه های محله باشه الویز خمیاز کشان سرش را تکان داد و گفت تو این محله پسر بچه پیدا نمیشه اصلا بچه پیدا نمیشه مردم پیش خودشون اسم منو گذاشتن فانی بچه زا رامانا گفت مامان اجازه میدین برم بیرون بازی کنم؟ الویز او را نگاه کرد و گفت تو که الان اومدی تو؟ جمی بازدرش میخواد بره بیرون میخوام بدونم برای چی؟ شمشیرش رو بیرون جا گذاشته الویز گفت امان از دست این پسر رو شمشیر مردشوی بردش خیلی خوب برو، گالشاتو دوباره پات کن رامونا گفت اجازه اینو بردارم و چوب کبریت سوخته از توی زیر سیگاری برداشت. اجازه میدین اینو بردارم بله خواهش میکنم توی خیابون نرو مریجه این با صدای کشدار گفت خداآفظ رامونا رامانا گفت خدا, رامونا. رامونا گفت. خدا بیا بریم جیمی الویز ناگه هم بلند شد ایستاد و گفت گیلاستو بده به من نه راستش نمیخوام ال الان باید توی لارچمان باشم میخوام بگم آقای واینبرگ انقدر آدم نازنینیه که دلم نمیاد تلفن کن بگو کشته شدی بل کنیم گیلاس لعنتی رو نه جدی میگم ایل میخوام بگم بیرون هوا داره حسابی یخ میزنه ماشین من زده یخ نداره میخوام بگم اگه نرم الویز گفت بذار یخ بزنه تلفن کن بگو مردی بده به من اینو باشه. تلفن کجاست الویز گفت آخرش از دستت درآوردم. با گیلاس های خالی به طرف اتاق ناهارخوری را افتاد. از این طرف ناگهان روی کف چوبی میان اتاق نشیمن و ناهارخوری ایستاد و کمرش را چندبار چرخاند و رو به جلو تکان تکان داد. مریجین قشقش خندید.